با سلام خدمت شما دوستان و عزیز که این ویدیو رو تماشا می‌کنید من مبین شکویفر هستم ساکن کشور آلمان و فیزیوتراپیست که از روی علاقه تصمیم گرفتم زبان عربی رو یاد بگیرم بعد از کلی تحقیق و پرسوجو اینکه چه استادی رو پیدا کنم و کدوم آموزشگاه این روند رو پیش ببرم خدا رو تونستم سایت مکالمه عربی دات رو توی گوگل پیدا کنم و با استاد عزیز و گرانقدر مثل رافو آدم و آشنا بشم استادی بینظیر با دانش عربی بسیار زیاد واقعا استادی برازندهیشونه که کلاسشون نظر شخص را واقعا بخوام بگم کلاسی بسیار فان و به شخص من اصلا متوجه گذار زمان نمیشم توی کلاس واقعا به همدیگه گفتگو میکنید کلاس یک جهته نیست که فقط استاد صحبت کنه و شما فقط شنونده باشین از شما تکلیف میخواد تکلیف هم به صورت فان هست به همدیگه صحبت میکنید خنده توی کلاس هست جدی بودن هست برای تمرین و انجام تکالیف محتوای زیادی رو به صورت رایگان در اختیارتون میذارم که فکر نمی کنم جای دیگه بتونید این چیزا رو پیدا کنید من به شخصا نتونستم پیدا کنم و به جد میتونم این استاد عزیز رو به شما پیشنهاد بدم که اگر که میخواید زبان عربی رو برای علاقه خودتون یاد بگیرید یا اینکه برای بیزنستون میخواهید کار رو انجام بدید پشیمون نمیشید اگر که با این استاد گرانقدر و با این وبسایتی که دارن حالا آینده خودتون رو پیش ببرید و بسیار موفق خواهید بود من از استاد یه کودی دارم کد تخفیف شما میتونید استفاده کنید که 10 درصد تخفیف بگیرید کد این هست ام ای ام اس امیدوارم که از این کد استفاده کنید 10 درصد تخفیف بگیرید و زبان عربی رو با علاقه یاد بگیرید و به آرزوتون برسید مرسی